فصل دوازده هم. شکمم همچنان درد میکرد بدون توجه به حجم خاکستر و زغال پخش شده روی پلهی سنگی نشستم خاک نرم مانند آرد گندم سیاه بود با حرکت نوک انگشت توانستم حروفی بر آن بنویسم. چیزهای مختلفی نوشتم تخت سیاه مدرسه را به یاد آوردم و خواستم قضیه فیسا قرص را بنویسم اما نتوانستم. مدتی که گذشت درد تسکین یافت. سر چرخاندم تا ببینم کجا هستم. جلوی ورودی شهرداری که اکنون خاکستر و زغال دورش پخش و پلا شده بود. دیوارهای نمای آن که تا دیروز بسیار زیبا و به رنگ کرم بود، اکنون سوخته و ریخته بود. نه تنها شیشه ها که چارچوب های فلزی پنجره ها هم از بین رفته و در کل بسیار انگیز بود در سالونی که از ورودی به قسمتهای داخل می چیزهایی مثل کلاه خود شکسته و تکه های فلز ریخته بود صدایی مانند کشیدن جسمی بر زمین از داخل به گوشم رسید صدا مانند کشیدن جعبه خالی بود گوشم را که تیز کردم به صدایی بدل شد که از زمین می جوشید با تعجب گولم را پشتم انداختم آن وقت صدای غیرمنتظر خطابم کرد آقای شیزوما این طرف آقای تاشیرو مهندس پیر کارخانه کنسرف سازی اوجینا بود آقای تاشیرو خوب هستید آن صدا چی بود صدای مرتب کردن باقی سوخته به دست کارکنان شهرداری است شما صورتتون سوخته محل خانه چطورند؟ شکر خدا خوب هستند و زغال سنگ شرکت شما چطور است؟ من دنبال شرکت زغالسنگ سنگ هستم اما دقیقا نمیدانم کدام طرف بود. آن شرکت هم سوخت و از بین رفت. محل پناهگاه کارکنانش را هم نمیدانم. به همین خاطر برای پیدا کردن زغالسنگ به شهر آمدم کنسسازی اوجینا کارخانه جزء های تهیه غذا و آسوغ ارتش بود و یک قسمت از محصول خود را به غذاخوری شعبه تارید لباس تحویل می‌داد اما اکنون آنها هم برای زغال گرفتار شده بودند حرف آقای تاشیرو این بود که حدود 20 نفر از کارکنان تحت مدیریت شیباتای معاون در شهرداری خدمت می‌کنند اما عرضه زغال متوقف شده است توضیح زغالسنگ در حوزه خدمات شرکت زغالسنگ است. بنابراین این گفتن چیزی درباره زغالسنگ در شهرداری داری فقط شنیدن کلمات رکیک از نظامیان بود حرف زدن نتیجه اینا خوشایند داشت. با لحن دار و سردی گفت نتیجه آمدنم به اینجا فقط قرولند کردن بود لازم بود به رئیس گزارش بدهم. پس با راهنمایی آقای تاشیرو برای دیدن بقایای سوخته شرکت زغال سنگ رفتیم. این پیرمرد رئیس قسمت مهندسی کارخانه کنسرو سازی بود و به خاطر زغال سنگ آشکارا با رئیس کارخانه زغال سنگ روابطی سمیمانه داشت. آقای تاشیرو گفت: با این همه باید شرکت زغال سنگ وجود داشته باشد. نمیفهمم چرا تا حالا محل استقرار آنها را مشخص نکردند. برای این کار باید دلیلی داشته باشند. همانطور که آقای تاشی گفت، در محل بقایای سوخته شرکت زغالسنگ بر دیوارهای بتونی به جامانده جمله های مختلفی نوشته بودند. جناب آقای فوجینو، خواهشمند از آدرستان را اطلاع دهید. کارگاه ریختگری شهر میکا. دفتر موقت شرکتتان را لطفا اینجا بنویسید. سانکیو نکابایشی. جناب آقای هوندا وضعیت سلامتی شما چطور است؟ محل پناهگاهتان را اطلاع دهید؟ کارخانه تسوزوکی در شهر کایتا جناب آقای مورانو، لطف کنید آدرستان را اینجا بنویسید. کوی اوچیاما چیزهای شبیه به این نوشته ها با خطی بد یا خوش نوشته شده بود همگی با زغالهای ریخته شده و در همه هم تاریخ ذکر شده بود. آقای تاشیرو جواب هیچ کدام نوشته نشده. تاریخ را نگاه کنید. سه روز هم گذشته. بنابراین باید به بدترین وضعیت ممکن فکر کنیم. بدترین وضعیت. افراد شرکت همه از بین رفتند. از خانواده آقای تاشیرو هم فقط خودش زنده مانده بود. همسر و دخترش زیر آوار مانده بودند. بعد هم آنجا آتش گرفته و پس ما سلمان مرده بودند. خودش هم آنقدر پیر بود که حسه حال کندن و جستجوی زمین را نداشت. چاره ای نبود. رهایشان کردم. ها هر کجا هم که باشند به هر حال مواد عالی درون خاک خواهند شد. وقت ساختن قبر برای آنها چه خواهی کرد. در خانه اجدادیم در زادگاه عکس همسر و دخترم باقی مانده. شاید آن را دفن کنم. اما وقتی خانواده ی همسرم بخواهند برای جمع کردن و ها بیایند دیگر نمیتوانم بگویم آنها موادی عالی شده اند فکر کردم آقا این دانشمند پیر زیادی حسابگری نکرده است نوع اعتراض را در وجودم احساس کردم فکر های دیگری هم کردم آقای تاشیرو پیر بود اما همسرش هنوز جوان و زیبا دخترش هم قبل از سن مدرسه و بسیار شیرین بود اگر استخانهای آنها را جستجو و جنازه‌هایشان را پیدا می‌کرد، آیا این ترس وجود نداشت که تصویری از آنها که آقای تاشیرو تا حالا در ذهن داشت، یک بار از بین برود؟ به این خاطر این جور می‌گویم که آقای تاشیرو هم مانند من در این چند روزه باید جنازه‌های فاسد شده زیادی دیده باشد که بر اثر سوختگی یا فشار مرده بودند. اما آقای تاشیرو اگر استخوان‌ها را کس دیگری جمع کند چه آقای تاشی را بدون جواب به این سوال گفت به هر حال در مورد زغال سنگ موافقی برای مذاکره به شعبه تهیه لباس برویم غیر از این راه دیگری نیست چون جنازه ها در اطراف پله واشینو کمتر هستند بوی بد و آتش زیر خاکستر به مراتب در آنجا کمتر است این را گفت و خلاف انتظار با گام های جدی راه افتاد در حین راه رفتن تا پل واشینو مجبور بودم بار دیگر درست مانند چهار روز قبل تکرار چشمنداز های تأثار انگیز آوار سوخته را ببینم. آقای را بدون صحبت درباره وضعیت اطراف فقط درباره گزارش هایی صحبت می کرد که مدتی قبل در شهرداری شنیده بود. قبل از جنگ کارکنان شهرداری در ساختمان اصلی حدود صد نفر بودند در حال حاضر کسانی که در شهرداری حاضر شده اند بیست اند که یک نفرشان هم کاملاً سالم نیست. تفاوت آشکار روز ششم و امروز این بود که سربازها و دو مرد که به نظر کارگر می جنازه ها را روی صفحه حلبی حمل می کردند. آن دو مرد متحیر ایستادند و مخزن آبی را که کنار دیوار فرو برای اطفای حریق ساخته شده بود نگاه کردند. در مخزن آب جنازهی شناور بود که استخان جمجمهش مشخص و از سینه به پایین درون آب بود. بر سطح آب کفی ای رنگ مثل روغنی چسبناک جمع شده بود. کارگران مردد و با نفرت صفه هلوی را به مخزن آب نزدیک کردند و آن را جلوی جمجمه سفید درون کف ها انداختند. حتی آقای تاشیرو هم گفت نفرت انگیز است. نفرت انگیز است. با استناد به حرفهای آقای تشیرو، حتی شهردار، آقای کوریا هم هنگام بمباران در خانهش کشته شده بود. کف پای راست شیبات های معاون حین راه رفتن زخم شده و در ماهیچه ساق پای چپش هم تکه شیشه امیق وارد شده بود. او با چوب زیر بغل سر کار می‌آمد. خانه شهردار کوریا در شهرک کاکو بود. پس بیشک کاملا سوخته بود. صبح روز بعد از بمباران معاون شیباتا خزاندار شهرداری آقای کوروسه را برای بازدید وضعیت شهردار کوریا فرستاد در جایی سوخته که ظاهرا سردر خانه شهردار بود جنازه نیم سوخته انسانی بالغ با جنازه نیم سوخته کودکی نزدیک هم افتاده بودند آقای کوریا نواش را بسیار دوست داشت شاید زمانی که می‌خواست سر کار بیاید نوش را بغل کرده که بمباران شده. شهردار کوئیا از بروکراسی داخلی سربراورده بود. آدمی مردمی، با زیردستان مهربان و در عین حال محکم و استوار بود. پیشتر و در دوره‌ای که او رئیس پلیس اوساکا بود، با رفتار مستبدانه ارتشی ها مخالفت کرد. در نتیجه برای کنترل ترافیک مشکلی بزرگ پیش آمد که با نام حادثه چراغ راهنمایی در روزنامه ها چاپ شد. درباره آن حادثه زیاد نمی‌دانم، اما فکر کنم یکی از حوادثی بود که باعث شد ارتشی‌ها اختیارات پلیس را سلب کنند. با استناد به حرف‌های آقای تاشیرو، بعد از مرگ شهردار کوрия، معاون شیباتا مسئول سر و سامان دادن به امور شهری شده بود. فقط بیست نفر از کارکنان شهرداری در محل کار خود حاضر می‌شدند. و با استفاده از ده صندلی، یک دستگاه ماشین تکسیر انواع برگها و پشت کاغذ های یادداشت که به نحو عجیبی سالم مانده بودند و مختلفی را انجام می دادند خانه همه این افراد سوخته بود در حالی که با ده ها نفر زخمی با هم بودند خانه و محل کارشان را یکی کردند برای خودشان غذا می پختند و زندگی می کردند خورده شیشه ها زغال ها و پاره ها را در یک گوشه اتاق روی هم انباشتند و به جای پنجره های شیشه دار چادرهای آویختند که از ارتش امانت گرفته بودند در مورد دفتر کار فقط سه بخش دفاع، بیمه و حراست در طبقه اول سمت جنوب شرقی باقی مانده بود بعدها وقتی خاطرات آن زمان شیباتا شیگترو را نگاه کردم اینطور روایت شده بود در ساعت سه بعد از ظهر روز هفتم ماه اوت امیر سائگی، فرمانده مرکز فرماندهی کشتیها در واحد نظامی سپید دم در اجینا به شهرداری سرزد. او با بیان اینکه به فرماندهی مرکز دفاع منطقی هیروشیما منصوب شده، اعلام کرد که از امشب تا فردا یک قسمت از واحد نظامی سپید دم و یک قسمت از واحد نظامی مستقر در شهرستان شیمانه به هیروشیما خواهند رسید. شیباتای معاون و سایر مدیران شهر این را شروعی برای اقدامات فوری ارزیابی کردند. روز هشتم ماه اوت، دستوری آمد مبنی بر اینکه با تمام اسناد دفاع شهری حاضر شوید. آن زمان ناکاهارا مسئول تحقیقات، هامایی رئیس بخش توزیع، ایتا ایسامو رئیس بخش نظافت و غیره به مرکز فرماندهی رفتند که در قاری درون کوه فوتامی واقع بود. یاد داشته اضافه شده وقتی به شعبه تهیه لباس رسیدیم، فقط دو سه نگهبان جلوی ورودی آن سر با صحبت میکردند. متفاوت با همیشه کسی دیده نمیشد که داخل و خارج شود. من و آقای تاشیرو در قسمت مدیریت با صدفان دوم ساسطاکه ملاقات و درباره توضیح زغارسنگ صحبت کردیم. صدفان دوم ساسطاکه به ما گفت به هیچ وجه اجازه ندارد به انبار اوجینا دست بزنند. بقیه ی بیخود خود بود. در باره زغالسنگ همونطور که تا الان گفتم مجبوریم در آینده انجمن را بازگشایی کنیم و تصمیم بگیریم. به رؤسان می گویم. در مورد حمل آن هم لازم است از لحاظ فنی بررسی شود. درباره‌ی نیاز سایر شرکت ها هم باید پرسجو شود. میخواهم تا زمان بازگشایی انجمن و حصول نتیجه صبر کنیم. با چون این و جوابی صدفان دوم ساساتا که تحریک شده و دیگر جدی به درخواست ما گوش نمیداد. به هر حال چاره نبود با مدیر ملاقات کردیم و حرف زدیم اما بیهوده بود و نتیجهای به دست نیامد آقای تاشیرو آدمی سرد مزاج بود فکر کردم کاسه صبرش یه است آقای تاشیرو گفت آقای رئیس خیلی ببخشید خواست شرکت من را بی بیپرده میگویم خواهشمند است جلسه انجمن را جلو بیاندازید و روشی مقتضی اتخاذ نمایید دست بردن به انبار آجینا اکیدن ممنوع است درست اما چون زمانی غیرعادی و بلکه فوق غیرادی است بیدرنگ باید کسی را به معدن زغال او به اعزام کنید اگر حالا خیلی زود کسی را بفرستید شاید تا شب بتواند به معدن برسد آیا یا شرکت زغالسنگ در داخل شهر هیراشیما پیش بینی شده است این نظرات فکر همیشگی ماست رئیس گفت مقابل دیدگاه نمی توانم از دستور سرپیچی کنم درباره این مسائل بعد از بازگشای انجمن صحبت خواهد شد گفتم خیلی میبخشید آقای رئیس در آینده جلسه انجمن را برگزار می کنید نتیجه حاصل می شود و کسی را به معدن زغالسنگ او میفرستید درست است؟ اگر این کارها را انجام دهید کی زغال به این دشت سوخت خواهد رسید؟ پناهگاه شرکت زغاف و نیز دفتر موقت آنها را نمیدانیم پس ما واقعا ت نداریم. ذخیره زغالسنگ شما برای چند روز کافی است؟ چهار تا پنج روز. من اینجور جواب دادم. آقای تاشی رو هم گفت، اگر به همین روال مصرف کنیم؟ برای ما درست درست اما چطور این کار را بکنیم؟ انگار رئیس فکری به ذهنش رسیده باشد این را گفت و ادامه داد شرکت های شما روح ارتش محسوب می شوند. پس بیشک بدون هیچ وابستگی می توانید بر اساس نظر خود آزادانه عمل کنید بنابراین راه حلی عرضه و با ما همکاری کنید هم به راه حل و هم به همکاری فکر می کنم من گفتم اما برای این کار شرایطی لازم است آیا امکان در یافت فکالت نامی از شهرداری وجود دارد اگر وکالت نامه باشد بلافاصله برای مذاکره به او بمیرویم. می میدانستم که در حال حاضر تعداد زیادی کارگر به معدن زغال سنگ او به وارد شدند و بازده جستجوی زغال بالا رفته است در معدن زغالسنگ مینه هم متناسب با افزایش حجم تولید انتقال تسریع نشده بود در نتیجه کوهی از زغال سنگ خشک و خالص روی هم انباشته شده است. دلیل اینکه بدون بازگشایی انجامن حمل زغال را تسریع نمی کردند، نمی فهمیدم. اگر زغال سنگ می آمد، شرکت زغال سنگ هم خیلی زود احیا می شد. اما رئیس به شکل غیرقابل قابل انتظاری غرق در فکر شد. و هرچه ما گفتیم کوبیدن میخ آهنی در سنگ بود. فقط مانده بود بگوید تولید پارچه لباس و بیندازید وضعیت خیلی احمقانه شده بود پس آقای تاشیرو را آنجا رها کردم و برگشتم در کارخانه کنسرو آقای تاشیرو گوشت خام و سبزیجات را کنسرو می کردند پس بسته به موقعیت اگر یک روز هم تولید متوقف می شد گرفتاری بسیاری پیش می آمد فکر کردم شرکت ما که سفارش کار از شعبه تولید لباس می گیرد، برابر طرف مقابلش خدماتی نامتعارف انجام می دهد. علت اصلی آن هم کمبود جنس بود وقتی توضیح قانونی مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز روزانه کم بود مجبور بودیم کمربندها را سفت ببندیم در جستجوی مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز همه جا را زیر پا بگذاریم و با چتر اعتبار شعبه تولید لباس آنها را تهیه کنیم بعدن به علت راحتی کار شرکت برای شعبه تولید لباس خدمات شرماوری را انجام می دادیم ما در جنگی خونین بودیم و طرف مقابل سودی آسان به کف می آورد. به همین دلیل چندین بار احساساتی ناخوشایند را تجربه کردم. بار اول زمان خرید میسو بود که اندک زمانی بعد از استخدام در شرکت داد. هنگام خرید پنجاه خمره چوبی هفتاد و دو لیتری میسو از کارگاهی تولیدی به نام ماتزو اوکا مجبور شدیم نصف آن یعنی؟ بیست و خمره را به شعبه تولید لباس بدنیم. از یک بار سیمان هم که برای ارسال به معدن خریدیم، نصف آن را به شعبه تولید لباس دادیم. وقت خرید دو بار ظروف آب هم، یک بار آن را دادیم. هنگام خرید شم و وقت خرید سی خمره چوبی نوشیدنی پرتقال هم نصف آن را به آنها رد کردیم. هر دفع هم از دست شعبه تولید لباس به ستوب می آمدیم. نیاز به ارتش، له شدن توسط ارتش و بلعیده شدن به وسیله ارتش. باید به روشی مستقل از اینها فکر می کردیم. ما به دادن این پیشنهاد به رئیس کارخانه شدم. برای کمبود زغال شش کیلومتر بی راه رفتن احمقانه مینمود. وقتی از در شعبه ی تهیه لباس خارج شدم، ویرانی حه های نیلوفرهای آبی که بسیار به آنها عادت کرده بودم، از سرنگیز بود. برگها همه رو به جنوب ریخته و وحشتناک اینکه مثل چتری پاره پوره شده بودند. هیچ چیز برای شاد شدن وجود نداشت. قبل از اینکه در این شرکت کار کنم به طور موقت در خانه سبک ژاپنی پاسبانی به نام آمیموتوشیگهزو در شهرک آساهی اقامت داشتم و هفت سال در کارگاه تأمین غذا و آذوقه نیروی زمینی ارتش کار کرد همراه بسته نهار پیاده رفت آمد می کردم. پس به شالیزارهای وسیع برنج و حسچه نیلوفر آبی در مرز بین شهرک آساهی و میدوری بسیار خوب کرده بودم هدیه روزانم در مسیر سرکار تماشای کلاقهایی بود که رقصان بر کرتهای خیس از مه صبحگاهی فرود می آمدند. رنگ بال خیس خورده کلاقها در صبح. با سبز شالیزارها هماهنگ بود با شالیزارهایی که زرد میشدند هم هماهنگی داشت بی هیچ سخنی به چشم آمدند و احساسی خوب همراه داشتند سپید دمی بدون ابر و صاف قلبم را به تپشوا می داشت در زادگاه هم میگفتند کلاغ صبحگاهی خوشیام است معنایش این بود که دیدن کلاغ در صبح بدبیاری آن روز را از بین می شاید به این دلیل بود که از همه رنگ گیاه و پرنده لذت می در روزهای نخست شروع کار در قراعت خانه کارگاه تهیه قضا به جستجوی یومن در ترکیب خوش پرداختم یومن به معنای مبارک و نیک بخت است بخت شهر هیروشیما بسیار جنازه ها حتی درون حسچه های نیلوفر آبی هم افتاده بودند. در علف های کنار شالیزار کبوتری سفید در خودش جمع شده بود. به آرامی نزدیک شدم و با دو دست گرفتمش. چشم راست کبوتر کور و پرهای شانه سمت راستش کمی سوخته بود. هرچند تصمیم به جوشاندن آن در سس سهیا و خوردنش در من بیدار شد، اما امان رو به آسمان هوا کردم و فراریش دادم. کبوتر با مهارت بال گشود و نزدیک به های نیلوفر آبی پرید رفت. در حالی که نیم این نسبت به سطح آب می کرد در یک لحظه درون حوضچه نیلوفر آبی افتاد. قدم زنان مستقیم سمت شهرک میوکی، درست در همان راهی که روز ششم از آن گذشتم پیش رفتم. شیشه های بیمارستان خیریه که روبروی ردیف درختان گیلاس ساحل رودخانه بودند شکسته بود. افرادی در سالنش به چشمی آمدند که با گرفتاری و عجل رفت آمد می کردند. به نظر می رسید کسانی است که برای جستجوی قربانیان بمباران یا پرستاری آمدند. خانه های کنار راه خم شده یا فرو ریخته بود. کسانی هم بودند که اطراف خانه خم شده را مرتب و های در هم بدون کاغذ را سرپا کرده بودند از داخل آن خانه ها صدای حرف زدن به گوش می‌آمد خانههایی هم بودند که سوخته و از آنها فقط تیرکی عمودی به جامانده بود افرادی بودند که سندلی های نشکسته و سیاه شده را به ورودی خانه آورده بودند و سطح سیاه آنها را با تکیه‌های پیاله می‌خراشیدند نقاشی صندلی زمختی را از ونگوگ به یاد آوردم که در مجله دیده بودم نمیدانم چرا، اما ناگهان احساس کردم، تشنم. در بزرگ راه پایین کوه هیجی، دو سه نفر زخمی درست به همان شکل آوارگان روز ششم راه می رفتند. یعنی با گذاشتن دست راست خود روی دیوار اداره توضیح انحصاری منطقه هیروشیما هیکل خود را نگه می داشتند و به سمت اوجینا تلو تلو خورانگام بر می داشتند. همه نیمه آریان مانند شبه صورتی رنگ پریده و لاغر داشتند. گربه ی که در روز ششم به دنبال آقای میاچی را افتاده بود دیگر پیدایش نبود. جنازه های سمت شمال پل میوکی جمعآوری شده اما به جای آنها تصویر انسانی با روغن سیاه برجامانده بود. اطراف گذرگاه میوکی دشت سوخته ای شده بود. یعنی یک نواخت سوخته بود. در اطراف خانم فقط چشمه کوچک برجامانده بود از آنچه فکر می کردم کوچکتر به نظر می رسید شیگکو و یاسوکو وسایل و مواد داخل پناهگاه و داخل چشمه را جمع کرده بودند باربری آنها را روی گاری بار کرده بود و داشت استراحت قبل حرکت می کرد. از همسایه ها فقط آقای نکاو میان یا سوخته آلونکی محقر ساخته بود بقیه همسایه ها با تقاضا از خیشاوندان و آشنایان به جای دیگری نقل مکان کرده بودند. با توجه به حرفهای باربر، مدتی قبل صاحب آن آلونک برای احوال پرسین از دشیگکو و یاسوکو آمده و گفته بود که از سرنوشت پسرش بیخبر است. بنابراین آقای ناکاو با دخترش دو نفری زندگی می کردند. و دیوار آلونک آقای ناکاو از حلبیهای سوخته. و مساحتش سه تا چهار و نیم متر مربع بود. خانه آقای ناکاو قبلا خانه مجلل از چوب سرو و بامی سفالی بود که بنای اصلی آن صد و چهل متر مربع وسعت داشت. آقای ناکاو سهام و آراغ غرزه زیادی جمع می کرد. می گفتند در کار تجارت بود و برای سرگرمی مجموعه از اشیای عتیقه داشت. میزهایی که برای تزئین این اتاقهای مختلف به کار می برد، متعلق به دوره مراماچی هستند با استفاده از لاک ژاپنی پایه هایی به زرافت پای گربه برای آنها ساخته و چونان شکیل و جالب بودند که میشد آنها را به سشون نگون و مراساکی شیکیبو هم رساند به دیدن آقای ناکاو رفتم و به عنوان هدیه تسلی برگ کالیپتوس، بیلچه و باد بزن آقشته به روغن خورمالوی داخل کود پشتیم را به او دادم فقط، کنسروها را در کوله پشتی باقی گذاشتم. اینها چیزهایی بودند که رئیس کارخانه به عنوان هدیه تسلی برای افراد شرکت زغال سنگ فرستاد. اما محل افراد آن شرکت معلوم نبود. پس این اجناس هم گیرنده خاصی نداشتند. لازم نبود آنها را برگردانم و خودم هم بچه نبودم که نتوانم بسته به موقعیت تصمیم بگیرم چه کار کنم. آقای ناکائو بدون اینکه منتظر تمام شدن توضیحات شود با تمام وجود این هدایای محقر را پذیرفت. به خصوص گفت که برگ اوکالیپتوس و بیلچه برایش بی نهایت ارزشمند هستند. نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. برگ های جایگزینی برای بخور راندن پشه بودند. اگر این برگها در پناهگاه سرپوشیده سوزانده شوند، در بیرون راندن انواع پشه ناقل بیماری بسیار مفید واقع می‌شوند کسانی که در آلونک های وسط آوار سوخته زندگی می‌کردند در طول روز در اعماق پناهگاه‌ها تن خود را می شستند حمله پشه ها وحشتناک بود و به نظر می‌رسید مجبور می‌شدند با ناشکری با تا غروب خورشید صبر کنند دختر آقای ناکائو در سنی بود که هنوز بسیار معصوم و با حیا بود پس مشکلاتش زیاد با بزن آغشته به روغن خورمالو هنگام سوزاندن برگ های کالیپتوس بسیار به کار می آمد. بیلچه چه داخل پناهگاه و چه در فضای آزاد برای برداشتن خاک یا پر کردن و حفره وسیله لازم و ضروری بود. واقعا متشکرم. آقای ناکاوا پی در پی تشکر می کرد. در پناهگاه خانم تا قبل از بمباران هوایی گیررک های بیشماری رشد کرده بودند. ججیرک جیر های قهوه ای رنگ کوچکی بودند که زمانی یکی از کارکنان بانک گیبی گفت که از تیره راست بالها هستند اما بعد از بمباران هوایی پشه های ناقل به شدت زیاد شدهاند پشه های وحشتناکی هستند واقعا این بیش از هر هدیه ارزش است انتخاب این هدایا کار من نبود در واقع خودم به هدایای در خور و مناسب دیگری فکر کرده بودم رئیس شرکت ما احتمالاً قضیه پشه های ناقل بیماری را از کسی شنیده بود که چنین هدایایی را همراه من فرستاد اگر برگ اوکالیپتوس خوب است دفعه دیگر باز هم میآورم آقای ناکاو پیوسته آن برگ های اوکالیپتوس را می رئیس کارخانه برگ های این گیاه همیشه سبز را درون سبد چیدن الف به صورت فشورده‌ای قرار داده برای من آورده بود. برک های نورس بیزی شکل، پلاسیده و در بعضی جاها شکسته شده بود. آقای ناکاو گفت تصمیم دارد تا یافتن پسرش در اینجا بماند. درباره غذا شهرداری نگران آنها شده و به آنها یک نیگیری بزرگ، آلوی خشک و ترشی تروب به عنوان چاشنی غذا می‌دهد. با آقای خدا خداحافظی کردم و برگشتم. تناب بسته به گاری را بر دوش انداختم و در حالی که آن را به جلو می کشیدم، حرکت کردیم. فهمیدم کشیدن آن خیلی سخت است. هر زمان که چرخهای گاری روی تکه سفال می‌رفت، تناب شانه ام را به عقب می‌کشید. به باربر گفتم آقای روکورو اینجوری خیلی سخت است این تناب قابلیت ارتجایی ندارد. اگر از لحاظ فیزیکی هم نگاه کنیم باز اشکال دارد. اگر هفت هشت کیلومتر همین طور راه برویم ماهیچه های شانه ایمان داغان می شوند. با شانت نکش با وزن بدنت بکش. باربر سر تناب را به شکل حلقه درآورد. از حرف باربر پیروی کردم و آن حلقه را از شانه راستم زیر بغل چپم انداختم طوری که گره تناب وسط پشتم بود. به این ترتیب دوباره حرکت کردیم. اینجوری کمی راحت تر شدم. ظاهراً گاری ما اولین گاری بود که بعد از روز ششم از این مسیر میگذشت. زیاد که پیش رفتیم برگشتم و نگاه کردم. تکه های شیشه زیر چرخ گاری خورد شده و دو خط درخشان پشت سر ما جا مانده بود. باربر دو کوزه آب حدودن دو لیتری در گاریش داشت. کمی که جلو رفتیم عرقمان را خوش کردیم. باز کمی پیش رفتیم دوباره عرقمان را خوش کردیم و بلافاصله بعد از آن آب نوشیدیم. قبل از اینکه از شهر بیرون برویم آب هر دو کوزه تمام شد. خسته که شدیم بوی طفون و گرمای تابش خورشید هم به نظر چند برابر شد. یکباره صدا زدم: «هی، hey, آقای روکورو اینجا استراحت کنیم؟ باربر گفت نه، nah, وقتی از شهر بیرون رفتیم. در حالی که فقط به مسافتی که پیش میرفتیم توجه داشتم گاری را جلو میکشیدم سه کیلومتر آمدیم سه و نیم کیلومتر یا کمتر از چهار کیلومتر آمدیم شاید هم چهار کیلومتر آمدیم. این جور در دلم محاسبه می کردم. وقتی چهار کیلومتر آمدیم به خانه کنار راه سر زدم و آب چاه خواستم کوزه ها را هم پر کرده و کمی استراحت کردیم باربر مرد حدوداً پنجاه ساله لاغری بود که با معرفی آشپز کارخانه پیدایش کردیم. نامش اکیتا روکورو و مردی قوی و پر استقامت بود که کار با او احساس خوبی به آدم میداد. راه افتادیم وقتی تا حدود پنج کیلومتر آمدیم عکس درون شهر تکه های سفال سطح جاده تمام شد و گاری دیگر بالا و پایین نمیرفت راحت تر شدیم سرانجام وقتی به محل اقامت موقتمان رسیدیم لامپها روشن شده بود وقتی خواستم برای استراحت روی ایوان بنشینم بسیار تعجب کردم. زیر روشنایی لامپ تا از برادر زنهایم تاقباز خوابیده بودند و خور رو پوف می پف میکردند دستمزد آقای روکرو را پرداختم سمت چاه پشت خانه رفتم و شیگه را صدا زدم هی، hey, برگشتم از کاری سخت برگشتم مهمانان راه دور را کی دیدید یاسوكو داشت زیر همام صاحبخانه آتش میافروخت شیگکو به محل شستن در نهر پشتی رفته و با اینکه تاریک شده بود داشت زرفهای شسته شده را آب میکشید ظاهرا وقتی شیگکو و یاسوكو از هیروشیما برگشتند دو مهمان خسته روی ایوان نشسته بودند نگران سلامت ما شده و از روستاشان در کوه آمده بودند وقتی دیدند که شهرک میوکی دشتی سوخته شده برای سر زدن به محل کارم آمدند و سرانجام به اینجا رسیدند. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم و از خوشحالی نمیتوانم گریه نکنم. همگی نگران شدید و لطف گردید آمدید. به نظر میرسد با مشقت و سختی از پل فلزی رودخانی آشیدا گذشتید. شیکهکو مثل کودکی رها شده گریه کرد.